قصه هفته. اسلام و مشتی بابا و پسر مشتی سفر موسرخه را آوردند کنار استخر رو نشاندند زیر بید و کنار سنگ مرد شوری اسلام کیسه این آن زیر بغل داشت که تکه تکه در می آورد و می دهن موسرخه موسرخم تند تون تند می جوید و با ولع زیاد می بلعی. اسماعیل و عبدالله و کت خدا هم آمدند و نشستند مشتی بابا گفت میگم حالا چه کارش بکنیم کت خدا گفت من که عقلم قد نمیده همه چیز دیده بودیم جز این یکی که آدمیزاد زاد مات و میمونه که چرا اصلا سیرمونی نداره پسر مشتی سفر گفت چجوریه که این همه میخوره و نمیترکه عبدالله صرفه ی بلندی کرد و گفت چه غیافهی پیدا کرده چشماشو میبینین؟ دهنشو میبینین؟ اسمایل دوتا زمینی از جیبش در آورد و گذاشت دهن موسرخه و گفت دست و پاشم یه جوری شده پسر مشتی سفر دست موسرخه را گرفت تو دستش و نگاه کرد و گفت پشم در آورده و پنج شده درست مثل پنجه خرس اسلام گفت همچی که میخوره یه ماه دیگه هیچی تو بیال پیدا نمیشه؟ موسرخه که دهانش خالی شده بود نعره کشید گاراس نمه گاراس نمه مشتی بابا گفت بدتر که هی، چقدر میخوری؟ اسلام چند تکه نان خوش گذاشت دهن موسرخه موسرخه نانها رو درسته بلعید و دوباره داد زد گاراس نمه اسمایل سیب زمینی دیگر گذاشت دهن موسرخه و گفت دیشب رفته خانه ننه فاطمه با هرچی کلم و سیب زمینی و پیاز بوده همه رو خورده. پسر مشتی سفر گفت سه شب پیش هم آمده همه ی گندمای پدرم و بلیده. عبدالله گفت خانه ما هم آمده بود که با دگنک از بالای انداختمش انداختم با اشبایی. اسمایل سیب زمینی دیگری گذاشت دهن موسورخه و گفت زنم از ترس هرچی که داشتیم برده قایم کرده. موسرخه سیب زمینی را بل اید و داد زد گراس نمه گراس نمه کت خدا گفت تو رو خدا اسلام نده بخوره ببینیم چه کار میکنه اسلام و دیگران دست نگه داشتند و چیزی به موسرخه ندادند موسرخه بلندتر فریاد کشید گراس نمه گراس نمه بابا گفت یه چیزی بهش بدیم بابا پرده گوشام پاره شد اسلام تکینان گذاشت دهن موسرخه و گفت خیلی خوب خیلی خوب داد نزن. کت خدا گفت چه کارش بکنیم؟ اسلام گفت حساب که می‌کنم میبینم یه ماه دیگه هممون باید راه بیفتیم بریم گدایی تا بتونیم شکم این جونور رو سیر بکنیم. مشتی بابا گفت یعنی هممون بریم گدایی و بدیم این بخوره؟ اسلام گفت مگه نمی‌بینینش به چه روزی در اومده؟ اسماعیل سیب زمینی دیگری گذاشت هن سرخه و گفت اگه اینجوری باشه از حالا باید به فکرش بود من که حال حوصله گدایی و این در آن در زدن را ندارم خدای خدا گفت عوض نون و این چیزا بهتر نیست که کا و الف بدیم بخوره پسر مشی سفر گفت با این چیزا درست نمیشه یه راه بیشتر نداره تنها یه راه مردها هم دیگه رو نگاه کردن عبدالله گفت کدوم را پسر مشی سفر گفت کلکشو بکنی موسرخه داد زد گاراس نمه گراس نمه اسماعیل دو تا سیب زمینی داد دست موسرخه و گفت گناه داره پدر خیلی هم گناه داره اسلام گفت من یکی نمیذارم این کارو بکنی پسر مشی سفر گفت پس شکارش میکنین اسلام فکر کرد و گفت میگم ببریم و بندازیمش یه جایی و درشو ببندیم و آو و نونی هم براش بذاریم اسمایل گفت از گرسنگی حلاک میشه. اسلام گفت. چه بهتر. چه بهتر که حلاک بشه. اگه هم نشه که هر روز یه مقدار از آب و غذاش کم میکنیم. شاید حالش جا بیاد. عبدالله گفت. ببریمش کجا؟ کت خدا خوشحال شد و خندید و گفت. بارک الله اسلام. بارک الله مشت اسلام. چه فکر خوبی. خدا عمرت بده. اسلام با دست به گوشه ای اشاره کرد. مردها خوشحال برگشتند و آسیاب خرابه ای را که تو راه جامیشان افتاده بود نگاه کردند. بلند که شدند، موصرخه دست گذاشت به فریاد و نعره کشیدند. گراسلمه، گرسنمه در آسیاب که باز شد موشها فرار کردند و رفتند و زیر تابوت کهنه قایم شدند. اسلام رفت تو، مشری بابا و مشری سفر موسرخ را هل دادند، بعد همه وارد شدند. آسیاب در و پیکر حسابی نداشت، سقفش ریخته بود و آفتاب افتاده بود روی دیوارها که هنوز از تهمانده آرد سفیدی میزد. اسمایل کوزه آبی را که دستش بود داد به عبدالله و دو تا سیب زمینی از جیب در آورد و گذاشت دهن موسرخه و گفت خوبه، اینجا براش خیلی خوبه. مشتی بابا کیسه پر هویج را گذاشت کنار دیوار و گفت اما اینجا که سقف نداره مش اسلام اسماعیل گفت: باشه. سقف نداشته باشه، چطور میشه؟ مشی بابا گفت: ممکنه به سرش بزنه و در بره. اسلام گفت: دیوارهاش بلنده، نمیتونه در بره. پسر مشی سفر پیت آش را گذاشت کنار تپره هویج و کوزه آب را تکیه داد به سطل آش. کتخدا خدا در شکسته را امتحان کرد و گفت: مش اسلام این در درکه چفت و بست حسابی نداره چه کارش میکنی؟ اسلام گفت درستش میکنیم، فکرشو نکن. کت خدا چند تکنان نان و یک مشت هویج از توبر درآورد و ریخت روی تابوت جلوی موسرخه. موسرخه شروع کرد به خوردن و مردها تماشایش کردند و آمدند بیرون. اسلام در را پیش کرد و گفت در باید میخ بکنیم، کار دیگه نمیشه کرد. اسماعیل گفت فردا باید دوباره بشکنیم و بریم تو؟ اسلام گفت، نردبان میاریم و میذاریم این بره دیوار و هرچی خواستیم از اون بالا میریزیم پایین. اسمایل گفت، چند روز این تو باید بمونه مش اسلام؟ اسلام فکر کرد و گفت، معلوم نیست، خدا میدونه، شاید یه روز، شایدم صد روز، شادم خوب شد و زودتر بیرون شو بردیم. کت خدا گفت، فکر میکنی که خوب بشه؟ اسلام گفت، ممکنه خوب بشه، ممکنم از که خوب نشه، کارا دست کارا تسر مشی سفر گفت، اگه خوب نشه، نباید راش بدیم تو آبادی، همه را به خاک سیاه مینشونه موسرخه که با دهان پر روی تابوت نشسته بود، نعره کشید گرست نمه،, نمه، شب که شد، موش ها از زیر تابوت آمدند بیرون، و آرام آرام نزدیک شدند و حلقه زدن دور موسرخه که پیت آش را تمام کرده بود و حویجها را به نیش میکشید. تا موشها را دید با دهان پر بلند شد و با لگد افتاد به جانشان. موشها هجوم بردند و پر شدند توی پیت خالی. موسرخه کیسه هویج و کیسه نان را برداشت و برد گذاشت روی تابوت و خودش هم نشست گوشه دیگر تابوت. ماه که در آمد و داخل آسیاب را روشن کرد موصرخه از جویدن بازمان و گوش داد. صدایی شنیده نمیشد جز صدای موشها که رفته بودند توی پیت و دیوارها را با اشتهاییس میزدند و یک صدای غریب انگار که در دور دست صدها دیگه آش روی اجاقها ها غغل صفبت شب گذشته بود که اسلام از خواب پرید. سیاهی بزرگی افتاده بود توی استخر و دست و پا میزد. از پنجره دوید بیرون مردهای دیگر هم آمدند بیرون. مصرخه را دیدند که تا خرخره رفته توی آب و زیر نور ما ماهی ها را دنبال میکند. کت خدا با تعجب نگاه کرد. مشتی بابا فانوس آورد و گرفت بالا و گفت: « پناور خدا رفته اون تو چه کار بکنه؟ کت خدا داد زد، آای بچه، اون تو چه کار میکنی؟ موسورخه تو استخر دست و پا میزد و به ماهی ها حمله میکرد. اسلام گفت، بیا بیرون، بیا بیرون. کت خدا گفت، رفتی اون تو چه کار بکنی؟ موسورخه گفت، گراس نمه. اسمایل گفت، همه خوراکی رو خوردی؟ موسرخه داد زد، گراس نمه، گراس نمه. کت خدا گفت، حتما همه رو تمام کرده که آمده بیرون. پسر مشتی سفر گفت چه جوری آمده بیرون؟ قد دستهایش رو گرفت دور دهان و موصرخه را صدا کرد. بیا بیرون بچه بیا بیرون. موصرخه که آب دهانش را پر کرده بود جواب داد گروش نمه،, گروش نمه، و به ماهی حمله کرد. اسمایل گفت چرا اینجوری میکنه؟ مشتی بابا گفت مگه نمیبینی میخواد مایا رو بگیره و غورت بده. اسماعیل گفت چجوری میخواد گرد بده؟ اینا که خوراکی نیستن هر کی بخوره جا به جا کارش ساخته است. پسر مشتی سفر گفت چه خوب حالا که اینطوره بذاریم بخوره و کارش ساخته بشه کت خدا پانوس رو از دست مشتی بابا گرفت و تکان داد و گفت بیا بیرون بچه بیا بیرون اسلام گفت اینجوری نمیاد بیرون کت خدا تا خوراکی نشونش ندیم نمیاد بیرون اسماعیل گفت همین الان میرم یه چیزی بیارم رفت و با دوتا نان برگشت اسلام نانها را گرفت و نشان موسرخه داد و گفت آی بچه بیا نان نان نان نمیخوری؟ موسرخه با عجله از استخر آمد بیرون و دوید طرف اسلام و اسلام نانها را پاره کرد و چپان توی دهن موسرخه کت خدا به اسلام گفت حالا چه کارش میکنی؟ اسلام گفت هناب لازمه یه تناب محکم بیارین که ببریمش و ببندیم که نتونه در بره و بیاد بیرون. پسر مشی سفر گفت: تناب که کاری نمیکنه. ما میبندیم و اونم فوری بازش میکنه و در میره. اسلام گفت: طوری میبندیم که نتونه باز کنه. کت خود گفت: بازم ببریمش تو آسیا؟ ها؟ اسلام گفت: آره، توی ده که بمونه شلوغ میکنه. سر و نمیذاره کسی خواب بره. لازمی که براش خورده خوراک هم ببریم. اسمایل تننا آورد: مردها دست و پای موسرخه را گرفتند و کشان کشان بردند طرف آسیاب. مشتی بابا فانوس به دست جلوتر میرفت و راه را روشن میکرد. مشتی سفر سرش را از سوراخ بام آورده بود بالا و خیال میکرد که بیلیها ها راهی جامیشان هستند. اول مشدی بابا فانوس به دست وارد آسیاب شد و رفت جلو. موشها در رفتند و زیر تابوت قایم شدند. اسلام و پسر مشری سفر موزرخه را حل دادند. همه وارد شدند. ماه درست بالا سرشان بود آنها خرت و پرت داخل آسیاب را خیلی واضح میدیدند. عبدالله گفت پس در و شکسته آمده بیرون. پسر مشری سفر گفت تقصیر اسلامه که در خوب محکم نکرده. اسلام گفت فکر کردم تا فردا ظهر هم همه خوراکی را که براش گذاشتیم نمیتونه تموم بکنه. پسر مشتی سفر با پا زد به پیت خالی و گفت: نگاه کنین. همشو خورده و بازم نترکیده. اسماعیل بسته نان و پیاز را گذاشت روی تابوت و گفت: اینها را تا نیم ساعت دیگه میخوره و تموم میکنه و بازم میزنه بیرون. پسر مشتی سفر گفت: با این حساب در روز دیگه چیزی تو بیل نمیشه پیدا کرد. کت خدا گفت: می ترسم بزنه به خرمنا و گندوم ها رو بخور و تموم بکنه پسر مشتی سفر گفت بهتر برین کمی کاه و یانجه براش بیاریم اسلام گفت چاره چیه؟ حالا کی بلده با این تناب چند گره حسابی بزنه؟ پسر مشتی سفر گفت من بلدم اسلام گفت جوری که نتونه بازش بکنه پسر مشتی سفر گفت گریهی بزنم که دا دو سال دیگه هم نتونه بازش کنه اسماعیل گفت من و عبدالله میریم و یونجه میاریم و رفتن. مردها نشستن دور موسرخه. موسرخه مشغول بود و نان را تون تون میبلیید که اسلام پای راستش را گرفت و بلند کرد. پسر مشی سفر تناب را دوتا حلقه کرد و مثل دوتا خلخال انداخت به مچ پای موسرخه. مشتی بابا پانوس را نزدیک تر آورد. پسر مشی سفر گره گندو و عجیبی زد به تناب که مشی اسلام و کت خدا خندیدند. پسر مشی سفر بلند شد و طرف دیگر تناب را بست به سنگ آسیای بزرگی که گوشه چهار دیواری افتاده بود منتظر استادند و موسرخه را تماشا کردند اسمایل و عبدالله با دو بغل یونجه پیدا شدند و آمدند یونجه ها را ریختند روی تابوت مشری بابا فانوس را برداشت هم آمدند بیرون محتاب رنگ باخته بود و تاریکی شب پریده بود و نوار شیری رنگی از مشرق بالا می آمد.